یم سلاممت رود خدمت خان ها و آوم خلوت طلبیدن اون ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج چنیزچ گفت ایشه خلوتی کن خانه را دور کن هم قیش و هم بیگانه را چست ندارد گوش در دهلیز ها تا بپرسم زین چنیزچ چیزها ها خانه خالی ماند و یک دیار نه جز طبیب و جز همان بیمار نه نرس مرش نرمچ گفت شهر تو کجاست که इलाज اهل هر شهری جداست وندر شهر از قرابت چیستت خیشی و پیوستجی با چیستت دست بر نبذش نهادو یچ به یچ باز میپرسید از زور فلچ خب جلسه گذشته ما تا اینجا خوندیم و بر سبیل معمول نشته هایی را که در جلسه گشته و ارزون رسید، اون مهمهاش را مهمترهاش رو. فرسوار یاد میکنیم ما در جلسه گذشته جلسات گذشته برش شد چه این قصه چنیزه شاه یه متن قصه داریم و در متن قصه مولانا معمولش اینه هر جا بهانه ای به دست میاره و مناسبتی پیدا میکنه میزنه بیرون از قصه و حرفهای خودش رو میزنه و گفتیم چه در این قصه ما 10 تا خروجی داریم یعنی ده مورد هست چه مولانا روال قصه را ششسته ول کرده و زده بیرون حرف خودش رو زده و از جمله جلسه اورشته خروجی پنجم داشت راجع به عشقه خروجی پنجم راجع به عشقه و به مناسبت عشق یاد میکند از شمس تبریز و یکی از درخشنده و پرشودترین تچه های مصنبیه این قسمتی چه در اینجا زا گذاشته گذشته خوندی بعد از اینکه این خروجی رو تمام کرد برمیگردد به قسطه خود قسطه از خود قسطه حرفش بیتی میگوید چه همین بود که خوندم خدمتتون باز میزنه بیرون و خب اول ببینیم که در اون خروجی مربوط به عش تفه گذاشته خوندیم چون معمولا وقتی شعرها خیلی پرشوره آدم گرفتار موسیقی و حال و هوای شعر میشه و از دقایق لفظی چه آرایه های لفظی چه دقایق بلاغی غافر میشه وقتی میخونه فشل میکنه چه مسئله خیلی روشنه درسته چه گاهی آدم وقتی به خود میاد و دکت میکنم میبینه چرا اینجوری گفته چرا اینجوری گفته خب یه بحثی چه مثلا ما در دفعه گذشته خدمتتون اشاره کردیم که این نفذ جان دامنم بر تافته است بوی پیراهان یوسف یافت است چه از برای حق صحبت سالها ها بازگو خالی از اون خوشحال ها ببینید ظاهر مطلب روشنه ولی خب یه خود دقت بکنی می‌بینی که این نفس خب بس کردن شارحین بس دادن این نفس جان دامنم بر تا افتاده است بعضی از اشارهین گفتن که مراد از جان حسام الدینه دفعه گذشته اشاره کردم چه میگه میجه مکان روح من جسدی گفته معلومه چه طرف حسام الدینه چه منظورش از جان او حسام الدینه چه دامن از شراب خب اده دی دیگه گفتن اصلا جان دامن از او یعنی دامن جان این نفس جان دامنم بر هست افتاست هم, هم دیگه معلوم نمیشه چون این نفس تبدیل میشه به ظرف زمان دیگه این نفس یعنی این لحظه ما اون که میفهمیم از حال هوای خوده قصه به نظرمون میاد این نفس، این, این یک حدیث نفسی است جان دامنم برتافته است، جان فائله جان فاعل برتافتن دامنه این نفس یعنی در این لحظه اینک به اینجا رسیدم جان دامنم را برتافته چرا این حرف را میزنیم بریم که در بحث های قبلی در همون توشت بیت قبل از این مولانا اشاره میکنه شمس جان شمس هر نور جانی شمس خارج را جهان خارج را با شمس جان چه شمس معنوی باشه و شمس تبریزی باشه با او میکنه شمس در خارج اگر چه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد شمس جان کو خارج آمد از اسیر نبودش در ذهن و در خارج نظیر پس بحثی است از شمس جان و اینجا وقتی جان میگه همون شمس جانه این نفس یعنی جان خودشه، یه حدیث نفسه یعنی اون نااگاه مولاناست با آگاه مولانا داره اینجا یه چشمچشی پیش آمده آگاه مولانا میخواد نا آگاه مولانا میخواد بیرون بریزه میخواد اون چه از شمس دیده و درباره شمس تبرک مو شمس داشته اینا رو برید بیرون و بجو آگاه مولانا مانع میشه و م... چه می گفتمش فوشیده خوشدار سر یار تو در ضمن حکایت گوشتار تمام این بحث ها خب نشو می نفط جان با دامنم بر دامن بر دامن بر تافتم خب بعضی از شارهین زمان ما، از دوستان خود ما، اینا گفتن که برتافته است یعنی بیقرار کرده مرا به التماس واداشته یعنی روح جسمم، روح و جانم، جسم و تنم را بیقرار کرده تکلف در این نحوه از نگاه کاملن به درم روشن دامن دامن دامن برتافتن اصطلاحی است که ما در شمس تبریجم میبینیم و در خود مولانا جای دیگر هم گفته رود سایه آفتابی را بیا دامن شمس دامن شه شمس تبریزی به تاب دامن تابیدن جرفتن از دامن و به اصلا دادن دامن که محچم در دستت باشه و دامن از دستت در نره این دامن تافتنه و در مقالات شنس میخونیم در یک لحظه به دو دست دامن او را در تافت و او دامن می‌کشید چه من بگذار او میخواد در بره و این سخت محکم گرفته بنابراین ببین اصطلاحات خاص مولاناست اینا را باید توجه داشته باشیم که برای بوی این نفذ جام دامن برتافته است بوی پیراهان یوسف یافته است چه از این باز شارهین ما ما می‌گه دامنم هم برتافته است یعنی دامنم رو چنار زده دامن رو چنار زده و دارد بیرون میآید مثل که در زیر دامنش بوده میخواد بیرون بیاید. و میبینید تکلف وقتی چه توجه نمی به روال سخن مولونا این تکلفات پیش میاد و وقت به مصرای دوبرون بوی پیراهان یوسف یافت است این اشاره است اون قصه یعقوب و یوسف چه وقتی یوسف میخواد نشانی بده به پدرش که هنوز زنده است، این پیراهنش رو میذاره اونجا و یوسف یعقوب وقتی این متاه های آوردن باز میکنن و این پیراهن در میاد، این که این نیل عجد ریح یوسف لولا ام توفنه دونه میجه اجا نکنید من بونی یوسف میشم اینجا بچه ها مزخرش میکنن میجه که تلاه اینه چه لفی چل قدیم تو اصلا تو دیگه کارت ساخته است پیرمرد مرد شدی و خرب شدی محمد میجی دیگه و اینا فکر میچهدن که یوسف مرده و رفته و یک و بوی پیراهن یوسف یک حالتی بهش دست میده میجه چه یوسف هست زنده هنوز میشه پیدا شد خب این اشاره از اونجا وقت... وقتی که صحبت عشق میکنه مولانا میجه چه نفت جان دامنم برطافت است بوی پیراهان یوسف یا صحبت عشق مولانا را یاد شمس تبریز انداخته بوی پیراهان یوسف یافته است که از برای حق صحبت سالها خب حق صحبت چی؟ اونا چه گفتن طرف حسام الدینه میگن این حرف حسام الدینه حسام الدین به مولانا میگه به خاطر سالها صحبتی که با هم داشتیم بازگو حالی از اون خوشحالها ولی با اون تفصیری که ما چردیم چه ما میجیم یه چشمشش درونی است به یه گفتگویی است در داخل وجود مولانا در اندرون وجود در ذهن مولانا صورت گرفته این برمیگرده به حق صحبت مولانا با شمس چه از برای حق صحبت سالها به خاطر سالها صحبتی چه با داشتی بیا این حکش را اد بکن بازگو حالی از اون خوشحال ها این نوشته هایی مربوط به دگاهی لظی خب اینجه ما میگویم و رد میشیم ولی میشه دربارهش خیلی بحث کرد مدلس شاید اقتضای بحث‌های بیشتر نداره در این باره ولی من خب استدعا می‌کنم از دوستان فاضل چی وقتی خودش رو به این دقاییت فج بکنند. برگردیم بریم سر بحث‌های سر دنباله قصه‌ای امروز باید بخونیم مولانا وقتی این هفش بیت روش در اول مدرس خوندم از خود گسته است از متن گسته است آورد که اون ولی، اون حکیم الهی که به عنوان طبیب آمده سر وقت بیمار اون ولی خلوت می از پادشاه میگه چه هیچ نیاد تنها خودم باشم با بیمار گفت ای شخ کن خانه را خانه رو خلوت بکن دور کن هم خیش و هم بیگانه را احدی نباشه این دور و بر ندارد گوش در دهلیزها حتی چستی از در صدد استراغ هم نباشه تا بپرسند این چنیزت چیزها خانه خالی مندهش دیار نه یعنی دستوره طبیب را کار بستند، خانه را خلوت کردند، همه در رفتند بیرون. جز طبیب و جز همون بیمار نه. نرمش گفت شهر تو کجاست؟ باز روال شجرد خاص مولانا از این تشرار الفاظ، تشرار نرنرمش. ما الان فقط در مورد... شاید مثلا بارانی که نرمیاد نرم،, نرم چه باران میگویید ولی مولانا این خیلی از این تجرار لفظ برای تأچید در معنا و این عجله ای در کار نیست یواش یواش میخواد رخ نبکنه و راه پیدا بکنه خیلی استفاده میکنه از این تجرار حالا خواهیم دید در مصنبی همینجور پیش چی می میدیم شما می‌بینید که این بستا شجرد خاص بیان مولانا شهر شهر و خانه خانه نر نرمش این هی، این دوری هرچی میزنه خب خیلی تاثیرش نفوذ سخن در این نحوه از بیان خیلی بیشتره نرم نرمش کو شهر تو کجاست؟ برای اینکه این, این چنینجه ها را از ولایت های دور می‌جرفتن می‌آوردن دیه معمولا معمولا دو نوع ما برده داشتیم در دوره اسلام حالا بر پیش از اسلام دو من زیاد وارد نیستند دوره اسلام ما دو نوع برده, داشت برده داشتیم برده‌هایی که برای کارجری، کار, کار جلب است را کار یدی، کارهای فیزیکی می جرپتن. مثل مثلا در مزاره اینا را به کار چچاوردی و اینها و آب و اینها مشغول می اینها اینا معمولا از آفریقا می آوردن، از سیاه های آفریقایی و یک نشت برده های دیگری که از تورچستان و از اون بالا، از دست خارج اینا بیشتر مال سگلب و اسلاو که الان میگویند اسلاو، نجاد اسلام این همون در زبانهای اروفایی سلیو به معنی برده است دیگه ما در عربی هم سگلب میگوینم، سگلابی برده های سگلابی، سگلابی، یعنی سلاوی این ها سپید بودن که وایتینگ ها می میر بودن یا می خریدن البته بیشتر می رو بودن نه اینکه می خریدن <تصفيق> می رو بودن می آوردن و از اون بالا و در بازارهای اسلامی یا می بردن در اندالوس از اونجا. عرضه می در بازارها نخواستهایی بود خودش اصلا یه رشته کاتبی خیلی به اصلاح لکراتیف خیلی پر بود که برده خریدن و در کار تجارت برده وارد بودن کار هرچسی نبود. بازارهای خاص برده فروشی داشتیم و نخخاص ها چه به اکسپرت کارشناسی این چیزها بودن، برده‌ها را وای نمی‌کردن، برده‌ها را اینا می‌شوکدن، بحث خیلی مفصلی است، من نمی‌خوام وارد بشم. بل، اینا غالباً بچه‌هایی که می‌آمدن به عنوان چنیز یا به عنوان غلام در این ولایات، یک یاد خیلی مبهمی داشتند از بچه‌جی‌های خودشون که در کجا بوده مثلا. خب این روانکاوی که این طبیب الهی شروع کرده روان یک approache یک برخورد روانکاوانه است دیگه به صلاح امروزی بخوایم بحث بکنیم این رفته میخواد ببینه که این از کجا یادش میادن از کجا آوردهند نرمش گفت شهر تو کجاست چه اناد اهل هر شهری دکتر برای اینکه این, این کندکاوی خودش رو توضیح بکنه به این بیمار میگه چه آخه من برای هر شهری یه دوای داروی خاصی باید تدویش کرد تو میگم چه مال کدوها هستی بعد من در اون شهر از قرابت چیست؟ چی رو داری بابایی من ندارم پدر مادری برادری خواهری چی عمی چی رو داری اونجا من درون شهر از قرابت قرابت چی میگن یعنی خیشی نزدیکی خیشاوند اگر با میگیم اگر با نزدیکان از قرابت چیست چیها رو دارین از نزدیکان خودت خیشی و پیوستجی با چیستد اون وقت اون وقت این روانکاوی رو توان کرده با طب بسلا جاستاده علمی که در این حال از جسم فیزیک هم قافل نیست دست بر نبزش نهاد، دستش را گذاشته بر نبز بیمار برای اینکه این تغییر حالتهای جسمانی را بتونه دکت بکنه و دریابه و اون چیزهای روحی را مطرح میکند. دست بر نبزش نهاد و یک باز می‌پرسید از, می از دوره فلاک چی بهت گذاشته، چه اتها بر سرعت آمده؟ هی همان بد چی شد، کجا بردن، چه جوری؟ هی از این، این حرف‌ها را می‌کشه، او گثه‌های خودش رو می‌گه، این دست دست روی بیماره و متوجه که چه این نبز می‌کرده مثلا از حالت طبیعی بیرون میشه و شدت میکنه یا تزوری مولانا اینجا باید یه خروجی میزنه به سرور میکنه و یه خروجی میزنه و اون خروجی ناظر است بر لزوم حوصله دادن در این نحوه از معالجه روحی شما وقتی در مقابل یک کسی قرار جرفتی می‌خوایی درش تأثیر بکنی، می‌خوایی در روح او، در ذهن او تأثیر بکنی، باید خیلی حوصله بخرد بدی و مدارا حتماً باید بکنی تا بتونی حرفاشو بچشی و مطلب را اونطوری که هست دریابی و چنان از تو می‌دوزده نمی‌ذاره تمام مطالب را رو دایره به اصلا تو باید خیلی با خوصله رفتار بکنی که او اون ترا دارد افشا بکنه به تو بجه. چون کسی خوا... را خواد در پایش جهد پای خود را بر سر زانون هد و سر سوزن همین سرش و نیابت میکند با لب ترش خوار در پا شد و دوشواریاب خار در دل چون بود واده جواب خار در دل جرد بدیدی هر خسی دست چی بودی غمان را بر کسی کس به زیر دومه خاری نهد خر نداند دفع آن بر می یا خر نداند دفع آن بر می دهد بر جهد و اون خار محکم تر زند قابل باید که خاری بر چند خرج بهر دفع خار از سوز و درد جفته می انداز صد جا زخم کرد چوارد بیهوت بی بیهوتریج به دادن در تربیت نتیجه معکوس می بخشه. این دو بیت اولی که مولانا میگه اینایی ای که همسه سال من هستند چه خوشبختانه در این مدست کسی نمیدینم همشون ما شالله زبانتر و سرحانتر هستند اونایی که همسه سال من هستند و دورانهای گذشترهای به یاد میارم این که این زندگی معمولی بود مردم همجور هم پا برهنم میرفتم بیرون بیرونم اینجوری نبود که همه از رفته و شسته و آسفالت و اینا نه خارزا رو همه خار میرفت تو تو پای این بچه ها یا بزرگترها فرق نمیکنه. کنه وقت برمی برای این این خار را پیدا بکنن من کاملا نستم تو جروع این مناظر واقعا اینطوری که مولانا وصف کرده پای خود را بر سر زانون نهاد، <تصفيق> پای را که بسلال خار رفته توش یعنی میزش زاشت چه که باشه و در کاملا تشمش را متوجه اون می کرد و سر سوزن با یه سر سوزنی میخواد ببینه این خار کداست و سر سوزن همین سرش لنیابت می کند با لب ترش اصلا این این دریانی که در زندگی روزمرز، در زندگی عادی، هر روز اتفاق می افتاد به این نفر، این وصف شده فوکلا دست، بلاد قدرت بیان فوکلا است، خیلی عجیبه اون عین اون قدرتی که صدی به خدمت میده در قضیه وزو جرفتن چه چطور آب را میششی در دماغت باید اینجوری بشه اصلا فوق العاده این قدرت شاعر در بیان مطلب عجب دیگه ها خار در پا میشه میگه خار در پا شد سن دشوار یاب ببین دشوار یاب با با یاب از این که مولانا استفاده میکنه از این پسمند ها <تصح> <تصح> ان شاء باز میکنید از این های فارسی مولونا خیلی استفاده میکنه دوشواریاب ما در خیلی چم در چیزهای گذشته البته الان برجشته و ما الان نویسندگان امروزی استفاده میکنند دوشواریاب در مقابل سحلیاب ولی خب خیلی در متون قدیمی خیلی ما ندیدیم دو شواری ها مولانا از این چیزها دستش باز تو ان میتونه استفاده میکنه خار در پا شد مولانا میگه برای خاری که در پا رفته باشه اینقدر مشكله اینقدر دقت و مدارا لازم داره حالا ببین خاری که در دل رفته باشه اون چهقدر مدارا لازم داره چقدر حوصله لازم داره پیدا کردن اون کار خار در پا شد چونین دشوار یا خار در دل چون بود واده جواب جواب من بگو پاسخ بگو اگر برای یافتن یه خاری چی در پا رفته باید اینگر دکت و اینگر احتیاط به خلد داد ببین خاری چی در دل رفته چقدر مدارا و چقدر دقت لازم داره خوار در دل جرب بدیدی، هر خسی، اگر هر مدعی تبابت طبیبان مدعی، اگر هر مدعی، هر خسی، هر رهگذری، هر چتی هر مدعی اگر میتوانست این خوار را پیدا بکنه خرد در دجد بدیدی هر خی دست چه بودی غمان را بر کارها آسان می شود. مردم این همه گرفتاری نداشتند. اگر هر کسی اون شناسهایی را داشت اون معرفت را داشت که باید خاد را چ دوری در آورد. اگر هر کسی بلد بود مردم این همه گرفتار نمیشدند. ببینید اینجا مرحوم فروزانفر یه شرحی داره میگه که اینو به دو جور میشه معنی کرد اگر میدانست که خا... خار از کدا در درخ نچرده راه اون را میبست یه وقته این خار از کجا آمده میرفت راه اون را میبست یعنی اون آب رو از سرچشمه باید ب دا و ایشون به اون بیت دیگری از موی استناک کرده که جر بدیدی مطلع مطش را ضیار بند کردی راه هر ناخش خیال مطلع از کجا طلوع کرده از کدا, کدا سر زده؟ این از کجا سر زده؟ این ای از کجا پیدا شده از اونظ می گرفتفت خب این یه نحوه نگاهی که مرحوم فروزان فرداشته یه نحوه نگاه خیلی ساده‌تری هم که به این جاها نریم منظور بگیم که اینه که اشاره به سبب الاز بودن بیماری دله که از اهده هرچس بر نمیاد و توجهش به این نیست که این از کدام پیدا شده اصلا می‌گه خود این بیماری های دل بیماری های روحی بیماری های روانی گرفتاری های ذهنی اینا کار, کار هرچست نیست باش و رفتن و براش نسخه تجزیح کردن نسخه به این بیماری ها کار هرچسب نیست. کار کار دل در کار کار در دل جرب بدیدی هر خطی اگر هر کسی این بینش را داشت چه خار را در دل میتونست پیدا بکنه خار در دل نه خاریش در پا رفته چه دست چی چه بودی غمان را بر کسی اگر طبیب روحی طبیب معنوی ما داشتیم ما اینقدر گرفتار نبودیم جرفتاری اینگر زیاد نبود بین ما و اگر این طبیب مدعی که بلد نیست و میخواد تبابت بکنه نتیجه معکوس میبخشه اینه میگه کس به زیر دومه خاری نهد این بچه های این کار رو دنجه حالا حالا به معنی اون حیوان سبور بارچهش عرض می‌کنم، خیلی کم شده قدیم اینجوری نبود، ماشین رو نم دارم راهن رو نم دارم، هواپیما و این حرف‌های چه نبود چه؟ همین حیوان بدبخت رو بار می‌چردن، می‌آمدن و تمام کتب بازار پرست بود از اینایی چه زیر بار اینا می‌رود مثل جن خرج هرچ چون خواه، چون بار همین برد عزیز است. این مسچنخر خب تا میتونست خدمت داده، بار سشیده، کار شرده دیجه این ولی بطه های شیطان خب اون زمان هم بطه سرگرمی نداشت سرگرمی های های اون دوران قابل بیاد میست و با سرگرمی حالا در زمانش ما بیراشده جرمی های اون زمان همین بود. می‌رفتم هم تو دنبال اون سجر بدبخت بیتاره را. ای دنبال سجر می‌ذاری. سجر تر ترت این‌های می‌رفت در این کوره‌های آوی که. وقت این‌ها توب می‌آوردن. حتی اونجا آرامش نمی‌جاشتن. اون‌زا با توب و اون‌ها که برانند بیرون چه با سنگ بتونن بزنندش. توت سجر این‌جوری خرم هم همینجور اینا شیطنت می‌چردن، خار می‌آمدن، می‌ذاشتن زیر دم خر و خرم چه خره دیگه خر، خر نداند یعنی در شعن خر اینه، خر, نمی خر خر بلد نیست، باید کار بکنه کس به زیر دم خر، خار این هر البته هرچست این کار رو نمی کنه اون ناچست ناچست داده بچه ها به زیر دوم خر خار می خر نداند خر در شنش این چی نمیدونه دیگه، چه کار میکنه دفع آن خر نداند دفع نمیدونه چه دوری باید این خار رو از خودش دفع بکنه بر می جهد. شروع میکنه به جست و خیز درست؟ جست و خیز خر کار را بدتر میکنه کنه خار هدون کند محكمتر زند پس در وقتی این گرفتاری ها پیش آمد سبر لازمه، مدارا لازمه، تعمل لازمه، دقت لازمه اینجور جوش آوردن و فوری اچسر عمل نشان دادن کار را بدتر می کنه. ببینید بر جهت خار محکم تر زند آگلی باید که خاری برچند خرز بهر دفع خار از سوز و درد جفته میاندهد صد جا زخم کرد جفته هم باز از اون کلمه ها کیسه خیلی چم به این معنا در گذشته کمتر به این معنا استعمال مولانا به همین معنایی که این روز می‌گیم جفتش خر، خب شروع کرده جفتش, جفتش ددن خر، نتیجه‌ش این شده چه صد جای دیگر هم زخم کرده. خب، ما غالباً می‌بینیم که غالباً برخورد ما با گرفتاری‌ها این‌جوریه، این تعمال در این جاهایی که مولانا این خروزی های مولانا واقعا جای تحمله که در زندگی غالباً ما این کارها را میکنیم جه و از اینکه سب بکنیم، تحمل بکنیم و مدارا، معالجه بکنیم کاری میکنیم که بدتر میشه اون حکیم خارچین برمیجرده بگسه قصه اون حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود که آیا اینجا خار بوده اینجا بوده جابجا جا دست میزد جابجا به جا می آزمود زن چنیزک بر طریق داستان اینه چشیده به داستان داستانگوی و داستان شنیدن یه چیز آدمیزاده که ببینید این آجسی باید استفاده کردی استفاده سودا می‌کنون دیگه این رمان ها و قصه های چی مینویسن مبلی بر همین دیگه انسان قصه گو خرج شده و قصه شنو. انسان موجودی است حیوان است قصه گو و حیوان است طالب قصه دلش می‌خواد که قصه بشنید دلش می‌خواد قصه بگوید ببینید اون زن کنیزج بر طریق داستان با می‌پرسید حال دوستان چه ها بودی با چه ها رفیق بودی، با چه ها آشنا بودی، با حکیم او یعنی اون کنیز با اون حکیم با حکیم او قصه‌ها می گفت فاش از مقام و خادگان و شهر و باش این رو شعر تاش خوندند شهر و تاش خوندند شهر با شوندند مختلف ولی این خانشی که بنده خدمت ارشدم این پیش می که بهترین خانشه با حاتم او قصه ها میگفت اون چنیزت قصه ها میگفت با حاتم فاش یعنی دیجه حریم برداشته شده ها. وقتی خیلی خودمانی شده و خیلی داشته از ثوابگ و اینها و خب کدا بودی و چیها داشتی و فلان یواش یواش در این جریان که گویی این حریم برداشته شده خیلی فاش آشکار زبنجیش را برای حکیب داره شرح میده از مقام کدا ها بوده خوازگان چی ها خریدن چی ها این رو خریدن دست به دست می جشتن این چریت ها و این گرام و شهر در کدوم شهر ها بوده و باش باش از اون مستر باشیدن باشگاه باش باش اون چه زندگی کرده کده ها زندگی کرده کده ها اقامت داشته زندگی شده سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت خوش ببین این هچین گوشش به چنیز بود خوشش به این نبز بود این دستش در نبز چنیزی گوشش سوی قصه گفتنش این قدرت بیان ها سوی قصه گفتنش می داشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت هوش تا چه نبز از نام چی گردد جهان او بود مقصود جانش در جهان این ببینه که این چه اسمی بر زبان دختر میاد و با آمدن اون اسم این نفس یه تغییری درش پیدا میشه دوستان شهر او را برش بعد از اون شهری دگر را نام برد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام شهر بودستی تو بیش؟ نام شهری گفت زن هم درگذشت رنج روی و نبض او دیگر نجشت خاجگان و شهرها را یچ به با یک باز گفت از زای و از نان و نمک شهر شهر و خانه خانه قصه کرد نه رگشت زنبید و ن رخ جشت زد هیچ تغییری در حالت این دختره پیدا نشد نبز او بر حال خود بود بیجزند تا بپرسید از سمرقند چپقند تا رسید به نبز دست و روی سرخ و زرد شد چه یه زرگر فرد شد چون و حکیم راز یافت اصل اون درد و بلا را باز یافت گفت کویه او کدام است درگذر او سر پل گفت و کوی قاتفر گفت دانستم که رنجت چیست زود در خلاست سهرها خواهم نمود شاد باشو فارغ و امن که من آن کنم با تو که باران با چمن من گمه تو میخورم تو کم نخور. بر تو من مشفکترم از صد پدر هانهان هان این راز را با چست مگو جرچه از تو شه کند بست دست دو, دو. خوب شهر رو خانه خانه قصه کرد نه رجش جنبید و نه رخ زرد نبز او بر حال خود بود بی جزند تا بپرسید از سمرقند چ گند نبز جستو روی سرخ و زرد شد چه سمرگنده یه زرگر فرد شد ببینید دقت بکنی در این کلام اینجا چون بعد بحث خواهد شد که این زرجر را چه دوری باید بکشند از بین ببرند زرجر نماد عشق مجازیه چه مولانا سمرقند را برگزیده و چرا از بین این پیشه‌ها زرجر را برگزیده میتونست بجه آهنجر، میتونست بره نمده درودجر، نتزار، هدزار، این همه شغلها، از توی شغلها زرجر را برگذیده، از توی شهرها سمرگن را سمرگن معروف بود به زیبارویان مولانا در فیمافی، یه مطلبی داره چون مولونای مدتی بستجیهاش در سمرگن بوده یه م... مطلبی داره میجه در سمرگن کسی عاشق نشود هیچ از در سمرگن عاشق نمیشه میجه ترا برای اینکه همه خوششن همه انگذ زیبا رو هستن چرا تو نمیتونی به چی دل ببندی چون بالاخره یکی رو بده انتخاب میکنی تا بهش دل ببندی میجه اصلا غیر ممکنی. تو توجه رو در بریاب بر یکی محدود بکنی تا بتونی عاشقش بشی عاشقی ندیجه عاشقی نشه فقط چشمس این نمیبینه هیچ کسی دیگر رو نمیبینه خود میجه سمرگن یه همچنش است، میجه در سمرگن کسی عاشق نشود هر کسی این رفته در سمرگن، در چنین شهری از بین شغل ها هم ببین آهنجر و بنا و نم نظار و هجار اینا رو ببین کارش با زیبایی، با قشنگی با زرجره دیگه با زرجری که کارش اصلا فریفتنه مردم هر چه بیشتر گشنگتر بسازه بیشتر میفری به دیگر بله این زیباروی سمرگندی با شغل زرگری نماد عشق فیزیچیه نماد عشق اشک. که بر جان این دختر افتاده و این دختر را از پادر آورده این طبیب باید چشم کرد که این دختر چه اینجوری شده؟ حالا چش کرد، این‌جوریه. این باشه در نظرتون بعد خواهیم دید که چه دوری میشه. نبزست و روی سرخ و زرد شد که از سمرگنده‌ی زرگرد فرد شد. مولانا ببینید نهوه چرام رو چطور در هم می‌ریزد و هیچ اتناهی نمی کنه زرعتش شیر داره مولانا در چلا که از یه زرجر فرد شد ما یه فردی قبلن فیش می کنم که در چیزهای قبلی ما داشتیم که فرد شد از او فرد شد یعنی از او زدا شد ما یه فردی گذاشتیم از قبلن بود این میگه که از سمر نحوه درست کلام اینجوریه که از زرجر سمرگندی جدا شد ولی به ضرورت شعری و وزن خراب نشه خوب مولانا پیوند کلام رو چه فر شد که از زرجر سمرقندی فرد شد جدا شد نبزست و روی سرخ و زرد شد که وقتی صحبت شد که این از, سمر، از زرجل سمرگندی وقتی این جداش شدند و فروختن به یکی دیگری این اونجا حالش نشان داد که تعلق خاطرش به و کدا جرفتاری داره چون زرنجور اون حکیم این راز یافت اصل اون درد و بلا را باز یافت گفت کوی او کدام است درگذر ببینید مولانا باز اینجا کدام است کدام است اون آخر جیه تلفظ نمیشه در شعر مولانا اون تله آخر را در رو در میجه مطلبش را بجه این در فسه در شعرهای قدیمی بوده، اینا فائد از رودعچی نقل شده ورد به بلورن در اون ببینی، ورد به بلورن در ببینی گوئی گوهر سرخ است به چف موسی عمران گوهر سرخ هست ولی اون ته خونده دیگه گو گوهر سرخ هست به چف موسی امران و مولانا هم این میکنه، خیلی جاها هست خواهیم دید، مولانا لحتی جرفتان میشه اصلا ایترانه نمیکنه، مطلبش رو میگه، حالا خوارمشا رو میگه خوارمشا، عبول حسن، خ... خلقانی را میگه بلحسین خارگان و هم مطلب را باید بده میگه میشه این برایش بصلا مهم نیشه حسین باشه و بلحسن باشه مطلب براش مهمه حالا خواهیم دیگه در همین گسته بومسیدم میگه بومسیدم مسیدمه چه از آب آخو مسیدمه چه اولان ها این رو بومو سیلیم کردید. باید باید, باید, باید بگه مطلبش رو درگذاره دیگه چی نمیشه چی مهم نیستی، بومو یاد یعنی. هر چه هست. بومو سیلیم رو خدا کذب گفت. چون زرنجور، چون زرنجور گفت کویه او کدام است درگذار، او سر پل گفت و کویه گاثر، گفت سر پل. سمرگند اونجا در محله قادفر سر پل قادفر گفت دانستم چه رنجت چیست زود در خلاص از سهرها خواهم نمود به دختر دلاری میده شاد باش فارو فاره و آمن آمن ما ایمن میگیم آمن چه من آم کنم با تو چه باران با چمن، باران، چمن تشنه بارانه و باران وقتی میاد چمن را صفا میبخشد و زندهش میکند دیگه میگه من با تو همون کار رو خواهم کرد. تو زندت میکنم، من زندت میکنم. من غم تو میخورم، تو غم مخور بر تو من مشفکترم از صد پدر اول این دختر بار بارقم این دختر رو تبوت شردم که دیگه امیزار باشه و مطمئن باشه که این معالضه خواهد شد هان هان این راز را با مگو و همین که راز این رو را به صورت راز مطرح کردن برای این طرف اصلا یک خودشی پنجات افصد معالجه ما، است و خانه ها این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جسد و هرچه بخوان از تو سوال جواب بکنند سوال پیچت بکنند با هیچ چسه هیچ چی درست؟ مولانا اینجا باز خروجی میزنه و اون خروجی این دفعه بر لزوم رازداری اون خروجی که قبلا صحبت کردیم لزوم حوصله و مدارا در برخورد با جرفتاری های روحیه این یکی لزوم رازداری گورخانه خانه رازتا چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود گفت <تصفيق> پیغمبر چه هرچه سر نهفت زود جردت با مراد خیش جفت دانه اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود ذر و نگره نبودندی نهان پرورش چایی افتندی زیر کان <تصفح> ببین مولانا باز نحوه چلام را در هم می ری جد. آقا این هر... کار هرچس نیست ببین یک بیشوادی مثل من از کبو ایت نهوی میکنه پس کردن رودین داره فورا میجیرند است یه بابا بلد نیست تو بی سوادید. یه وقت هست به چلام را اصلا میسن چه مسخر كلام مسخره اوست عوضش میکنه گورخانه راز تو دل شوات این نحوش دوریه. نحو دوری نحو مستقیمه درستش اینه چه چون دل تو گولخانه راز تو بشود جید جید. چون دل تو گولخانه یعنی مقبره. چون دل تو راز تو بشود یعنی رازت را در دلت خودت نجاه داری مثل ای که به قبر سپردی چون گورخانه‌ی راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. اگر افشا نکنی، پیش خودت نجاه داری. گفت پیغمبر، چه هرچه سر نهوف، زور جردد با مراد خیش، جفت. <تصفيق> دانه چون در زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود شما وقتی دانه میپاشید، اون دانه که زیر خاچ نمیره و اریان میمونه جلوی آفتاب باد، اون از اون دانهی که زیر خواچ پنهان شد، اون میتونه بمونه و نشو نما بکنه تو نه چون اندر زمین پنهان شود سر او سر سبزی بس ببین حکمت‌ها رو مولانا تا از زندگی روزمره از همون زندگی چیزیر دست و پای من و شما ریخته و ما همینطور بیتوجه رد نشیم مولانا از هر کدومش یه باب معرفتی یه باب حکمتی باز میکنه اگر خاری در پایش میره اگر نمی‌دونم دونه در خونش افشانده مثلا چه قول بده یا دانه در زمین پنهان شود سر او سبزی بستان شود زرنگره اگر نبودندی نهان پرورش چه یافتندی زیر کان تون قدیما فشم میشهدن که این زرنگره همین سنجهای معمولی چه میمونند و سالها باید یک سنگ در زیر زمین تبدیل بشه به علماس نگره به فلا حال، اون سنگی که بیونه اون سنگ تبدیل به الماس به زرد و نگره نمیشه اون سنگی که در اعماق زمینه و پنهانه اون میتونه بعد مولانا نیمه رو جوی میکنه به قصه وعده ها و لطفای اون حچیم کرد اون رنجور را آمن زبیم این دختره اطمینان حاصل کرد به میشه، موالجه میشه وعده ها باشد مولانا میگه هر وعدهی ای هم اینجوری نیست داد تو فری به هر وعدهی رو بخوری نه وعده ها باشد حقیقی دلپذیر وعده ها باشد مزازی تا سجیر وعده اهل کرم جنز روان وعده نااهر شد رنج روان وعده هی هستی تو رو سر به بیابان سر به گورت میکنه وعده هی هستی نه میتونی تو واقعا خلوطت میکنه وعده ها باشد حقیقی پذیر وعده ها باشد مجازی مجازی در مقابل حقیقی یعنی به درد نخواهد خورد وعده اینه که شما را به اون چیزی که وعده داده است برساند دیگه اگر نرسون در دروغ دیگه وعده ها باشد مجازی تاسجید تاسه در لغت قدیم خیلی استعمال بر شمس و مولانا خیلی استعمال شدن در نظامی خیلی استعمال شده تاسه و تلواسه این دو تا لغت تاسه به معنی جرفتجی دل ببینید تاسجیر تاسجیر ملالابر تاسجیر همونه که الان ما اینا نمیدونم چی میگه برحور تا سه و تلواسه را معمولاً قدیب خیلی ما در آذربایجان تاسر آن فراموش کردیم ولی تلواسه را فراموش نشدیم تلواسه در ترچیه آذربایجانی اگر اینجا از همشهری باشن میدونن که تلواسه، تلواسه میجیم، تلواسه یعنی اضطراب و دقدقه چطوری دقدقه چیزی رو دل و پسی را داشته باشه با میگهیم تلواسه،, تلواسه درست همون معنی در متون قدیم ما داریم ولی تا سرا ما و شدیم ها با، باشد مزازی تاسجی تاسجی یعنی ملاله آور است سنایی همتاثر آورده در مقابل همکاسه ببین دوستان همکاسه که میان میشینن و به اسلا چیزنجه مجسانن دور شیرینی. ها. و این آورده در مقابل دوستان همتاثر اینا که نه دوست غم خارند. دوستی که با تو در د دلت در, در غم و گصد میخواد مشارشت بکند. یار هم کاسه هست بسیاری یار هم تاسه چند بود باری. یاره هم کاسه چه می میشین با هم تو چوب میخورن و خیلی میخندن تمام میشه. یار هم تاسه، این چه بتونه شریچه و گصه تو گم این چند بوده؟ وعده <تصفيق> <تصفيق> اهلی چرم جنج روان بعضی نسخه ها نقد روان میارن ولی نسخه های قدیمی تر جنج روانه. هر دو به ایچ ولی فکر می کنم این حافظ چه خیلی به مولانا علاقه داره حافظ مخصوصا به غزلیات مولانا خیلی توجه داره فکر می کنم چه نسخه اش دست حافظ بوده نقد روان بوده نه جند چون در حافظ ما نقد روان هی میبینیم عاشق مفلسی عاشق مفلس جر قلب، دلش شارد نسور مکنش عیب چو بعد نگده روان قادر نیست یا جرگل به دلم رو ننه حتی دوست من نگده روان در دمش از دیده شمارم یا نصار خوش راحت حتی نگده جان من هر چند چی نیست نگده روان رو برای تو مقداری این نگده روان در مقابل جنجی پیدا اینجا باید دوست ما داریم نقد روان در این پاوراگی همون ما آوردیم انشالله اجر خدا به خواد چاک بشه دوتا از نسخه های خیلی قدیمی ما نقد روانه و نسخه های دیگر ما جنز روانه و پرگرامی کنه هر دو به ایچ راست لعده اهل کرم جنز روان موزور از روان رایج بودن. ببین، شما یه وقتی هست که قدیم که از سیناسی اینا نبود که خب اینا معمولاً روان اون جنزی بود، اون مقدار از چند خزانه بود، خزانه از این زغاهات قیمتی بود که، زروسیم و اینا، اینا را یه مقدارش را سچه میزدن و اون هر کس هم چه سچه نداشته، وقتی بلاخره یک چشی بسلط میشد و یه جایی، حکومتی برقرار می‌چرسد جمیزت به جویز بود. اون بگه مردم دیگه راحت بودن یه چشیدن و این لازم نداشت وقتی گفت چه مثلا یک اشرفی یک مثلا فلان معلوم بود یه مسکاله یا چمتر از مسکاله یا چندوی بلاخره وزنش سنجیده بود و معلوم بود نقد روان اینها رو میگن که در هر بازاری رایجه چه میتونن رو بخرند و عده اهل چرم جنج روان و عده ناوهل شد رنج روان این روان به معنی رایج نیست روان دوم به معنی روحه این رنج روحه اون رنج روانه یک روان به معنی راید اسم فایل رفتن، یک روان به معنی روح و جان در یافتن اون ولی رنز را و عرض چردن رنز او را پیش پادشاه مولانا بر می به قصه بعد از اون برخاست عظم شاه چرد باز واو اینجا ده نمیشه بعد از این برخاست تو ازم شاه چرد اینجوری خدمت ولی خوندن ایشو برخاست و ت خوندن نمیشه یا باید واو را و صدا بکنیم یا باید ته رو صدا بکنیم برخاست و ازم شاه چرد یا برخاست ازم شاه کرد یا اینجور به اقتون یا اونجوری حال یکی از حروف اینجا باید فدا بشه بعد از اون برخواست از شاه کرد شاه رازون شمه آگاه کرد شمه یک مقداری کمی از وضع حال کنجش رو گفت گفت تدبیران بود کان مرد را یا یعنی اون زرجر رو تازه آریم از پی این درد را شما ببینید از پی این درد را از و هر دو برای تعلیل در مطابق دستور زبان فارسی ولی مولانای هر دو را میاره یه چیز را نمیاره این در نه در چیزای قدیمی در زبان قدبای ما هست چه گاهی برای تحچید یه چیش کافیه ولی اونا دوتا میارن از پی این درد را، میتونید بجه چه حاضر آب باید حاضر آریم این درد را یعنی برای خاطر این درد. یا حاضر آریم از پی این درد باز میشه یعنی برای خاطر این درد ولی، هر دو از را و را را، هم از، از پی و هم را، با هم جمع می کنه. هر دو مفید به اصلاح قدیمی ها، مفیده تعلیله، هر دو برای علت سببه. گفت تدبیر و مباد کن مرد را حاضر آریم از پی این درد را، یعنی برای این درد، برای معالجه این درد. مرد زرجر را به خونزون شهر دور با و خلعت بده او را غرور چون که سلطان از حکیم اون را شنید پنده او را از دل و جان برگذید. غرور یعنی گول زدن این که میگن آدم مغروریه خب آدم مغرور آدمی گول خورده گول خودش رو خورده غرور به معنی گول کسی که مغروره مسلمان آدم گور خورده ایست زرف های خودش خیال میکنه که همه کار ازش برمیاد. فرستادن پادشاه رسولان به سمرگند به آوردن زرجر ش فرستاد اون طرف یک دو رسول حازگان و کافیانه بس ادول یک دو نفر فرستاده رسول از سوی خودش فرستاد به سمرگند چه اینا هم خوازق بودند بلد بودن کارشون رو هم کافی بودند با کفایت آدم های با کفایت بودند کاربر بودند بلد بودند برمان کار بودند بس ادول عدل بودند عدل یعنی قابل اطمینان آدم مرده اطمینان آدمی است متقلب نیست پس این آدم هایی که انتخاب کرد برای فرستادن اونجا هم در کار خودشون وارد بودند هم ادم با وفایت بودند هم آدم های قابل اطمینان بودند تا سمرگند آمدند و امیر پیش آن زرگر ز شاهانشاه بشیر بشارت آوردند پیش اون زرجر از شاه لطیف کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو صفت نچ فلان شه از برای زرجری اختیارت شد زیرا مهتری این این خلعت بجیر و زر رو سیم چون بیایی خاص باشیم و با ندید. مرد مال و خلعت بسیار دید غره شد از شهر و فرزندان برید اندر آمد شادمان در راه مرد بیخبر کنشاه قصد جان شد شما ارچردم که این زرجر نماد عشق جسمانی نماد شهرت بسلو خب شما ببینید چه مطابق در شن خودش رفتار میکنه با وجودی زنو بچه داره ول میکنه زنو رو فورا گول میخوره، گول پول میخوره این چه بیا پیش ندیم میشی، نزدیش میشی، مقرب میشی ببین رفت این طرف اصلا هیچ رفایی، هیچ صح... چون این دختره قبلا پیش این بوده دیگه. ولی این زرجر آدم با وفایی نبوده، دختره گرفتار عشق زرجره، دختره بیماره در عشق زرجر، شهوت وفا نداره. ببین، این زرجر نماد شهوته، نماد این عشق مجازیه. اینا گولش دادند و این فورم گول خورد. گوه چه شاه میخواد تو را مقرم و خاگان میشی بیا بریم زاو ندیم میشی و مرد مال و خلات بسیار دید غیره شد از شعر و فرزندان بارید اندر آمد شادمان شا در راه مرد بیخبر کنشاق گست زانش شد عصب تازی نشست و شاب تاخت اسب تازی چه تندرو اصبه تازی دو تچ روید به شتاب یکی از اینا را جیر آورده سوار شده زودتر برسونه خودش را اصبه تازی بر نشست شاب تاخت خونبه های خیش را خلعت شناخت اون خلعتی که باید در شاب بگیره برای بره رفت های خودش اون در خوبای خودش رو بیرون نقد بکنه بجیده مولانا باز انزای خروجی داره شما ببینید در هر لحظه مولانا یک مناسبتی پیدا میکنه و میذنه از که صبیرون چرا برن چه قصه برای او بهانه است که ها رو آورده برای همین طرف خود قصه اصلا مهم, مهم نیست براش که رو میاره برای این چه این فراسومه ها رو پیدا میکنه از این جاها مطالب خودش رو بتونه بیجی ای شده اندر سفر با سد خود به پای خیش تا سوالقضا سوالقضا، گضای بد همه چیز گضاست دیجه، گضا به معنی حکم خداونده قضا حکم دیگه، قاضی رو چه قاضی میگن برای این چه قضا میکنه حاکمه حکم میده حکم میکنه قضا حکمه سوء القضا خوب شد بد حکم خوبه ردپایی بد هست ای شده اند در سفر با صد رضا خود به پای خیش تا سول القضا در خیالش در خیالش ملچ و مهتری این خوابه ملچ و مهتری میبینه گفت از رائیل, از رائیل اون وقت اونزا از پشت پرده از رائیل نجرانه گفت از رائیل رو آری بری باز از این مشکلات مسرفی یکی این خیلی از این شارهین شارهین بزرگوار غالباً وقتی میرسن به این مصره های قابل تحمل مشکل رندانه اصلا از این رد میشن هیچ توجه بس نمی کنند خودتون شما میبینید این شرح ها رو نگاه بکنید غالبا اینجوریه همون بله در خیالش مرچ عزو محتری گفت از رو آری بری مرحوم فروزانفر این بیت را آورده ولی معنی نچرده است میگوید مصره دوم بر طریق سخریه و استهزا و مناسب با مضمون یکدر المقدرون از یزهج انسان تک تک تق، اهل تقدیر تقدیر دیری می میکنن قضا هم میخنده خب یعنی که این چه آخر گفت عزایی رو آریب بری این منعیش معنی نشد اینشون رد شده از معنی لفظی <تصفيق> انگروی میگه ازرائیل از رائیل با زبان حال علا طریق الاستهزاب و الاستهقار میگوید به دو ای مدم مغافل به سوی حرص و هوایت آری راه میبری یعنی اینجوری خونده گفت از رائیل رو آری بری یعنی راه میبری و فک میشی. یک شاره دیگری باز از معاصرین ما میگوید در حالی که از رائیل به ریش او میخندید و میگفت آری برو انترافش میکنی میبری شاره دیگر باز از معاصرین میگوید بری به معنی بر هستی بری بر رو به معنی میوه گرفته و اینجوری میجه که آری بری تو برتری گفت رو آری بری یا آری بری یا نتیجه میجیری میاری من شخصا یه نظری دارم که در هیت شری حتی در شرح های من ندیدم من فش می‌کنم چه این کلمه ترچیه بری یعنی نزدیک ما الان هم در ترکیه گفگاز هم در ترکیه آدربایدان خودمون هم در ترکیه عثمانی ما داریم بری در ترچه کاشخری برو بوده اصلش بری بری یعنی نزدیش بری باخ یعنی نزدیش بیا بری, بری جل یعنی نزدیش بیا گفت از روی رو آری بری بری یعنی نزدیش بیا برو بودون برو خوبه نزدیش تر بیا من فیش میکنم که مولانا از این تفنن ها زیاد داره چه چلماته ترکیری می میسه کوش و دوش چه نفهمیدن چه دوش و دوش کلمه ترکی کوش و دوش وقتی کاروان میره کوشماق وقتی شه را را و میکنه چه ارابه ها رو رامیاندازن و کوشماق تا چیک میکنه که راه شروع بشه و دوش اونجا چه توقف میکنن کوش و دوش این دو تا لفظی چه در مولانا مول میبینیم چه نه بولانا از این تفنن ها زیاد داره و هم در غزلیاتش هم در مستانی من شخصاً فکر می‌کنم که این بری چون با هیچی از این معانی پرتکلف آدم نمی‌تونه دلش راضی بشه رو آری بری بری یعنی میبری یا بری، تو بری، تو میوهی، تو مثلا، تو دستبالا رو داری، خیلی متچلفانه است. بله. من فشلو کنم نزدی چه وقت من ما اینجا بیشتر ضرور نریم. جلسه رو ختم میکنم انشالله تا هفته یا اندجر زنده بودیم باز بردوزیم که چهی رو چه اینجا پاره شد خیلی بردوزیم